فصل هفت امام سجاد زین العابدین علیه السلام ربایی ولادت امام سجاد علیه السلام تبریک که زین العابدین آمده است شعبان شد و پور شاه دین آمده است شد هدیه ما بهر قدومش سلوات به به که امام ساجدین آمده است شهادت امام سجاد علیه السلام ای نوه‌ی مرتضا یا علی ابن الحسین وارث خون خدا یا علی ابن الحسین زینت دوش حسین زینت برآبدان جان و جهانت فدا یا علی ابن الحسین ذکر مصیبت تو روزه کرب و بلاست کشته رنج و بلا یا علی ابن الحسین دمی که شد زهر کین قاتلت ای ساجدین شدی ز آن غم رها یا علی ابن الحسین رها شدی از غمی که گفتنش مشکل است فقط بگم کربلا یا علی ابن الحسین زهر تو را کشت نه کشت تو را اسارت وای ز شام بلا یا علی ابن الحسین شدی شهید آن دمی که ظالمان میزدند سنگ و سنان بر شما یا علی ابن الحسین وای از آن سارت، وای از آن خرابه وای از آن چند جا یا علی ابن الحسر زه مجلس شراب و کوچه و بازار شهر محله نصارا یا علی ابن الحسر وای من از محل یهودیان شام و هلهله آهنگ یا علی ابن الحسین از این غم بی حساب خون چکد از دیدش یوسف خیر و نسا. یا علی ابن الحسنگ خدا کند که روزی صحن و سراب سازیم برای آن بقه یا علی ابن الحسین دست مرا بگیری زین عباد عالم تو شاهی و منگدا یا علی ابن الحسین